سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست حقوق من خوش آمدید یک استلاحی رو در موردش صحبت میکنیم که بارها و بارها شنیده شده است به اسم چهار دیواری اختیاری خب این عبارت یک حد و مرزی دارد یعنی چه؟ یعنی آنکه متابق قانون هیچ کس نمیتواند در ملک خودش کاری بکنند که موجباته زرر و همسایه خود بشود مگر تصرفاتی که به قدر متعارف باشد مانند پخت و پست و برای رفع حاجت یا رفع زرر از خود باشد خب پس اگر ساعت دوه بام داد همسایهی صدای زبط خودش را بلند کند و شما به ایشان مراجعه کنید و ایشان به شما بگوید چهار دیواری اختیاری این جمله ایشان بر طبق قانون فاقد هرگون ارزش هست اگرچه گوش دادن به موسیقی امر متعارفی است اما گوش دادن به موسیقی با صدای بلند و آن هم در ساعت دو بامداد امر متعارف نیست پس زمانی می توانیم به این عبارت استناد کنیم که اقدام ما متعارف باشد برای رفع حاجت باشد یا رفع زرر باشد بنابراین اگر اقدامات ما دارای نصف نباشد دیگر نمی توانیم به این عبارت استناد بکنیم